اندجنو خرد سلام شب خوبی رو براتون آرزو افسانه ها مردمی ترین هنرند طرح مسائل مردم در قالبی جذاب ساده و روان و در این حال سرگرم کننده یکی از دلایل فراگیر شدن افسانه ها در بین مردمان هر سرزمینه افسانهای ای رو از سرزمین پهناور و زیبای خودمون ایران عزیز و با فرهنگ تقدیم شما کنیم به نام افسانه پرنده تلایی امیدواریم که از نقل این افسانه زیبا لذت ببرید و نکاتی رو بیاموزید در زمانهای بسیار قدیم پیرمرد و پیرزنی زنی که در آسیاب کهنی در نهایت فقر و نداری زندگی میکرد پیرمرد سالیان درازی بود که آرزوی داشتن یه پرنده طلایی توی دلش بود و همیشه از این بابت قصه میخورد اون هر شب با رؤیای پرنده تلایی به خواب میرفت و صبح زود قبل از طول آفتاب وقتی که هنوز ستاره توی آسمون آخرین چشمکاشون رو می از خواب بیدار میشد و مقداری دونه روی زمین می پاشید و دام خودش رو در کنار دونه ها پنگ می کرد. بعد با اشتیاق فراون به گوشه می و با چشم گردش به کمین مینشست تا شاید بله شاید پرنده طلایی در دامش گرفتار بشه و آرزوش براورده بشه ماه گذشت ولی هیچ پرندهی توی دام پیرمرد اسیر نشد یکی از روزها پیرزن بعد از کار هر روز پیرمرد با نومیدی گفت ای مرد تو بی خود هر روز خواب صبح خودتو حروم میکن هیچ فایده ای نداره پرنده طلایی همش خواب و رویاست خیاله بعد آهی کشید و گفت آه من که به جایی تو خسته شدم بعد بلند شد و به ساعت دوخت دوزش رو آورد و تو بوشه نشست و مشغول وصله کردن لباس ها شد پیرمرد حرفی نمیزد ولی توی دلش مطمئن بود که بالاخره یه روزی پرنده طلایی توی دامش اسیر میشه و آرزوش برآورده خواهد شد خدای اون روز پیرمرد مثل روزهای دیگش صبح خیلی زود از خواب بیدار شد به سات دامش رو پنگ کرد و خودش هم در گوشهی به انتظار نشست هنوز چند دقیقه از انتظارش نگذشته بود که با کمال تعجب دید که یه پرنده طلایی که پرهای زیبا و مفاجی داشت آروم به طرف دام اومد و چند لحظه بعد هم توی دامش گرفتار شد صدای چیک چیک پرنده توی فضا پیچید پیرمرد از خوشحالی فریاد کشید پرنده طلایی تلایی پرنده تلایی. و بعد با قدم هاگ تند و شتاب زده به طرف دام رفت و پرنده طلایی سخت به تکاپو افتاده بود و بالا و پایی پرید، ولی راه گریزی نداشت پیرمرد دستش رو با احتیاط توی دام کرد و همین که خواست پرنده تلایی رو توی مشتش بگیره پرنده تلایی زبون باز کرد و گفت ای پیر مرد مهربون منو آزاد کن پیرمرد با تعجب به پرنده تلایی نگاه کرد و با ناباوری پرسید تو، تو، تو، تو حرف میزنی؟ تو میتونی حرف بزنی؟ بعد با خوشحالی گفت آه پرنده طلایی سخنگو خدای من شکره شکر پرنده طلایی دوباره گفت خواهش میکنم منو آزاد کن خواهش میکنم پیرمرد مرد در حالی که با دستاش پرهای طلایی و مواج پرنده رو نوازش میکرد پوسخندی زد و گفت چه حرفی میزنی من سالهاست که منتظر یه همچین روزی بودم حالا حالا به همین آسونی تو رو آزاد کنم و بعد به سراحت گفت نه تو رو آزاد نمی کنم پرنده تلایی با نارو تزر رو گفت ای مرت مرد خواهش میکنم میدونی می, می بچه های من گرستن اونا چشم انتظار منن من باید برای اونا دونه ببرم وگرنه از گرسنگی تلف میشن تلف و اشک زلال از گوشه چشمش سرازی شد و روی دست پیرمرد چکید پیرمرد که کمی دلش به رحم اومده بود قدری تحمل کرد و زیر لب گفت خدایا چیکار کنم اخه پرنده طلایی گفت که منو آزاد کنی من هر آرزویی که داشته باشی برآورده میکنم قول میدم قول پیرمرد نگاهی به پرنده انداخت و گفت چطوری پرنده طلایی گفت به وسیله پرهام من یکی از پرهای تلایی خودم رو به تو میدم تا هر وقت احتیاج به کمک داشتی یا آرزوی رو داشتی اونو رو آتیش بزنی اون وقت من در عرض یه به هم زدن حاضر میشم و هر ای که داشته باشی برآورده میکنم پیرمرد برای قبول حرف پرنده طلایی مردد بود میترسید که پرنده طلایی اونو فریب بده و از دستش رها بشه پرنده تلایی که متوجه تردید پیرمرد شده بود گفت اگه اگه به حرفای من شک داری میتونی امتحان کنی پیرمرد گفت چجوری پرنده گفت همین همین الان هر آرزویی که داری بگو پیرمرد فکری کرد و گفت آرزو آرزو میکنم از چه زودتر از این زندگی سخت و تلخ از این فقر و نداری راحت بشیم منو زنم توی یه امارت بزرگ و راحت زندگی کنی. بعد توی چشمای درخشان طلایی تلایی زد و پرسید خب میتونی این من منو برآورده کنی؟ پرنده تلایی با خوشحالی گفت البته البته که میتونم حالا هر جا که من رفتم تو هم دنبالم بیا پیرمرد پرنده رو از توی دام بیرون آورد و اونو توی دستاش گرفت و با اشاره پرنده طلایی بران افتاده لحظه‌ای کوتاه گذشت پیرمرد و پرنده طلایی به جنگل بسیار بزرگی رسیدند. در کنار این جنگل بزرگ، امارت با با سنگهای قیمتی بنا شده بود. پیرمرد با حیرت تمام اطراف امارت باشکوه را برانداز کرد. با اشاره بال پرنده تلایی دروازه آهنی امارت باز شد و پیرمرد با های شمرده و آروم وارد اونجا شد امارت اتاقهای زیادی داشت که همه پر بود از وسایل جور و جور پیرمرد هنوز با ناباوری چشمهای حیرت زده شد توی امارت میچرخون پرنده طلایی به پیرمرد گفت اینم امارتی که میخواستی حالا حالا منو آزاد میکنی؟ پیرمرد با خوشحالی گفت البته البته که آزادت میکنم و مشتش رو باز کرد و پرنده تلایی رو به طرف آسمون پرواز داد. پرنده تلایی چرخی زد و به نزد پیرمرد برگشت و یکی از پرهای تلایی خودش رو کند و به پیرمرد داد و گفت بیا بگیر این پر رو بگیر هر وقت به کمک من احتیاج داشتی اونو آتیش بزن اون وقت من فورا حاضر میشم و هر کاری داشتی برات انجام میدم. پیرمرد پر رو از پرنده ترایی گرفت و ازش تشکر کرد و گفت ای hey پرنده مهربون میشه زنم رو هم به این امارت بیاری؟ پرنده گفت البته و در یه چشم هم زدن زن پیرمرد توی امارت ظاهر شد پرنده از پیرمرد و زنش خداحافظی کرد و توی آسمون پاک خدا گم شد پیر زن گیج و به دور خودش میچرخید اونم از دیدن چون این امارت باشکوهی به حیرت افتاده بود و هاجواج به پیرمرد و اطراف نگاه میکرد کرد. پیرمرد لبخندی زد و گفت بریم توی اتاق استراحتی بکنیم و من تمام ماجرا رو برات تعریف کنم اون روز پیرمرد و پیرزن زندگی تازه رو شروع کردند. پیرمرد صبح زود از خواب پبیدار میشد. لباس شکار میپوشید و برای شکار به اطراف میرفت و غروب به خونه برمیگشت و گاهی که شکاری سید میکرد دلی از عذا در و حسابی خوش میگذوندن. اونها هیچ کم بودی نداشتند و هرچه میخواستن براشون معیا بود. ماها از این وضعیت گذشت و کم کم اخلاق پیرزن تغییر کرد. بیخودی بهونه میگرفت و با پیرمرد ناسازگاری می کرد. پیرمرد که از دست اخلاق بد پیرزن خسته شده بود، علت این تغییر رفتار پیرزن رو پرسید و پیرزن گفت: «تو هم اگه جای من بودی اخلاقت از اینم بدتر میشد." پیرمرد پرسید: برای چی زن مگه تو مشکلی داری؟ پیرزن با ناراحتی گفت چه مشکلی از این بدتر که از صبح تا تو شب توی این عمارت بزرگ دور از مردم باشم بعد با بغس ادامه داد من از تنهایی خسته شد نه کسی به سراغمون میاد و نه صدای آدمی زادی به گوشمون میرسه و بعد اعتراض کنن صداشو بلند کرد و گفت اینم شد زندگی پیرمرد گفت زن اینقدر نشکری نکن تو تو این همه راحتی و آسایش رو توی خوابم نمی پیر زن با ناراحتی گفت من این راحتی رو نمیخوام ما باید یه جای ای بریم پیرمرد پرسید جای دیگه کجا بریم که از اینجا راحتتر و بهتر باشه ها کجا پیرزن با یک دندگی گفت همین که گفتم. من اینجا بهمون نیستم که نیستم. پیرمرد به ناچار به سراغ پر طلای پرنده رفت و باز هم پرنده طلایی فورا در مقابل پیرمرد ظاهر شد و گفت با من کاری داشتین پیرمرد شونه ای بالا انداخت و گفت من با تو کاری ندارم ولی زنم با تو کار داره پرنده طلایی رو به پیر کرد و پرسید چی شده؟ با من کاری داری؟ پیرزن جلو اومد و دستی با مهربونی بر پرهای طلایی پرنده کشید و گفت ای hey, پرنده طلایی من من از اینجا بودن خسته شدم ما اینجا خیلی گریب و تنهایی نه کسی به اون میاد و نه چشممون به کسی میفته بعد با خواهش گفت میشه؟ میشه ما رو به یه شهر بزرگ ببری تا حداقل مردم رو ببینیم و دلمون از تنهایی نپوسه؟ پرنده طلایی گفت هر چی شما بخوای و اون وقت به پیرمرد و پیرزن اشاره کرد که به دنبالش به راه ساعتی بعد پیرمرد و پیرزن به همراه پرنده طلایی به یک قصر خیلی بزرگ رسیدند با دروازه های بزرگ و های شیشه رنگی، یک کارالسکه زرین هم در کنار قصر به انتظار آن‌ها ایستاده بود. پرنده طلایی به پیرمرد و پیرزن گفت: این قصر در اختیار شماست. و بعد یک پر دیگه به اونها داد و به تندی از اونجا دور شد. پیرمرد و پیرزن هنوز وارد قصر نشده بودند که چند نوکر و کلفت به دور اونها حلقه زدند. و اونا رو به داخل قصر دعوت کردند. پیر مرد و پیرزن روزهای خوبی رو سپری می کردند. اونا هر روز با کالسکهی زرین توی شهر گردش میکردن وقتی به قصر برمیگشتن غذاهای رو خوشمزه برشون معیا بود اونا هیچ کمبودی نداشتن پیرزن با خوشحالی به پیرمرد گفت می‌بینی مرد اینجا بهتر از اون درویابو نیست پیرمرد سری تکوند و گفت آره آره آره حق با توه چند ماهی گذشت پیرزن این بار فکر دیگه ای به خاطرش رسید بنابراین به پیرمرد گفت هیچ میدونی آدمیزاد دائم در حال رشد و ترقیه پیرمرد با بی‌حوصلگی گفت خب آره پیرزن بتونی گفت پس ما هم باید رشد و ترقی کنیم مثل تموم آدمیزادای دیگه پیرمرد زیر لب نالید باز چه خوابی برامون دیدی زن پیرزن گفت ما باید وضعمون بهتر از اینا بشه پیرمرد با تعجب پرسید از این بهتر؟ و با عصبانیت گفت زن مگه یادت رفته ما توی یه آسیا پیرزن پیرزن حرفونو قطع کرده گفت نه یادم نرفته که یه زمانی توی اون آسیا زندگی میکردیم ولی الان وضع فرق کرده پیرمرد با خشم گفت چه فرخی؟ چرا کفران نعمت میکنی زن؟ پیرزن زن با ناراحتی اخمی میکرد و به گوشه خزید. پیرمرد مرد آروم به اون نزدیک شد و گفت چه رشدی؟ چه ترقی بالاتر از این؟ و بعد هم به اطراف چشم شرخون گفت میبینی تمام اینا در اختیار ماست. ما دیگه چه کم بودی داریم؟ زن بی اعتناب با ترش گفت همین که گفتم ما باید رشد و ترقیه بیشتری بکنیم پیرمرد سکوت کرد و کلامی به زبون نیوورد پیرزن گفت فورا پرنده طلایی رو حاضر کن من باش کار دارم پیرمرد به ناچار باز هم پره پرنده طلایی را آتیش زد و مثل دفعات پیش در یه چشم هم زدن پرنده طلایی مقابل اونها ظاهر شد و در خاصشون پرسید. پیرزن به حرف اومده گفت پرنده طلایی من دلم میخواد شوهرم حاکم این شهر بزرگ بشه و اختیار تمام شهر رو به دست بگیر پیرمرد با تجه پرسید کی من؟ من حاکم این شهر بشم پناه بر خدا زن زن چه خواسته ای که تو داری؟ پیرزن گفت شلوغش نکن پیرمرد نگاهی به پرنده طلایی تلایی انداخت و گفت اما من دوست ندارم حاکم بشم من همینجوری که هستم راحتترم پیرزن گفت ولی ما باید رشت و ترقی کنیم تو میشی حاکم شهر و منم میشم زن حاکم اینجوری همه به ما احترام میذارن و نمیتونن رو حرف ما حرف بزنن ما دستور میدیم اونا باید اجرا کنه پیرمرد آهی کشید و سری از روی تأسف تکون داد و این بار هم پرنده طلایی از اونا خواست تا به دنبال اون به راه بیفتند پرنده طلایی اونها رو به یک قصر بزرگتری برد قصری با خزانه هایی پر از طلا و جواهر و حاکمیت شهر به دست پیرمرد افتاد و وزیر، دار، جلاد و خلاصه همه تحت فرمان پیرمرد بودند پیرزن از این بابت خیلی خوشحال بود و احساس غرور میکرد فیلمات هم از این وضعیت بدش نمیومد و ته دلش راضی بود حدتی گذشت پیل مرد و پیر زن همچنان غرق شادی بودند. اونا دیگه اون آدمای سابق نبودن و کم کم دوچار کپ رو قرور شده بودند به مردم شهر زور می و آرامش و آسایش اونها رو هم به هم ریخته بودند و مردم از دست ظلم و ستم اونها سخت در عذاب بودند و هر کس اعتراضی می کرد به دست جلاد سپرده می شد در یکی از روزای سرد زمستون که پیرزن جلوی ایوون قصد نشسته بود و با گرمای آفتاب خودش رو گرم کرد و کنیزکی با نوشیدنی گرم از اون پذیرایی این کرد یه دفعه تکه ابر تو آسمون پیدا شد و روی آفتاب گرم رو پوشوند پیرزن فریاد زد این تکه ابر چرا جلوی آفتاب رو گرفته ها؟ و با عصبانیت وارد قصد شد و به که در حال حساب و کتاب انبالش بود گفت فورا پرنده ی تلایی رو حاضر کن پیرمرد مکسی کرد و گفت پرنده طلایی تلایی؟ دیگه چه خواسته ای داری؟ پیرزن با آقا ترخی گفت از اون بخوام تو اون که ابری رو که جلوی و گرفته برداره و مکسی کرد و گفت نه نه اصلا ازش میخوام اختیار تمام زمین و آسمون رو به دست ما بده تا هر وقت دلمون آفتاب رو خاست حاضر بشه و هر وقت دلمون سایه خاست سایه حاضر بشه پیرمرد قبول کرد و پر پرنده طلایی رو آتیش زد و پرنده تلایی حاضر شد و این بار هم از اونا خواست تا برای برآورده شدن خاستشون با او همراه بشند هنوز چند قدمی جلو نرفته بودند که یه دفعه ابرهای سیاه آسمون رو پر کرد و همه جا تیره و تار شد. چشم چشم رو نمیدید. باد سختی وزیدن گرفت و گرد و غبار سختی به هوا برخاست. پیرمرد و پیرزن که سخت ترسیده بودند با نگران تلایی طلایی صدا زدند ولی جوابی نشیندن. صدای لرزون پیرزن در تاریکی پیچید. اینجا اینجا این و پیرمرد توی تاریکی جوابش رو داد. نمیتونم نمیدونم. پیرزن گفت: حالا حالا حالا چیکار کنیم؟ پیرمرد گفت: باید صبر کنیم شاید پرنده طلایی به سراغمون بیاد و ما رو از اینجا نجات بده. و هر دو توی تاریکی با نگرانی به انتظار پرنده طلایی ایستادند ولی خبری از پرنده طلایی نشد که نشد. ساعتی بعد هوا کم کم روشن و وزش باد ملایم تر شد. پیرمرد و پیرزن زن چشماشون رو که باز کردن خودشونو توی هم آسیابکوهنه و قدیمی دیدن. اونا با ناراحتی پرنده ی رو صدا زدن. جوابی به گوششون نرسید. پیرمرد مرد کنان به زنش گفت دیدی چیکار کردی؟ همش تقصیر توه که ما دوباره به وضعیت قبلیمون برگشتیم. تو زیادی توقع داشتی زن پیرزن با ناراحتی و ناباوری گفت یعنی یعنی ما باید تا آخر عمرمون تو این آسیب کنه زندگی کنیم دوباره پیرمرد گفت بله روز از نو روزی از نو پیرزن با چشمهای گریون گوشه ای نشست و توی دلش خودشو به خاطر زیاد خواهی سرزنش میکرد و پیرمرد هم از دریچه آسیاب به آسمون خیره مونده بود و زیر لب از خودش میپرسید یعنی yani, یعنی yani ممکنه یه بار دیگه پرنده طرایی رو ببینیم و غمی بزرگ توی سینش سنگینیه بارون باریدن گرفت و از آسیاب آب تند و تند شروع به چکیدن کرد پیرزن آروم از جا بلند شد و سطلی برداشت و آبهای توی آسیاب رو بیرون ریخت پیرمرد مرد نالید امشب باید روی زمین خیز بخوابیم زن پیرزن آه سردی کشید و از آسیاب تو نقل کردم افسانه پرنده طلایی بود با امید حضرت حق همه ما از دنیا و آخرتمون توقعی منطقی در حد توان و ظرفیت و بینشمون پیدا کنیم و خداوند به ما دلی بزرگ و جرف عطا کنه این برنامه کار مشترکی بود است. نویسنده و سردبیر زینت سالپور میراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار داریوش گودرزی زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدروس